حکایت یکی از حکما پسر را نه همین کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. گفت ای پدر گرسنگی خغ را بکشد. نشنید این که زریفان گفتند به سیری مردن بهک گرسنگی بردن. گفت اندازه نگهدار. کلو و ربو و لا تسرفو نه چندان بخور که از دهانت براید نه چندان که از زعف جانت براید با آن که در وجود تعام است عیش نفس رنجاورد تعام که بیش از قدر بود گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند بر نان خوش دیر خوری گل شکر بود مکن گر مردمی بسیار خاری که سگ زین میکشد بسیار خاری رنجوری را گفتند دلت چه میخواهد گفت آنکه دلم چیزی نخواهد معده چو کج گشت و شکم درد خاص سود ندارد همه اسباب راست.